مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتاد و هفتم مکرر کردن آزلان پند را بر آن مهمان گفت پیغمبر که ان فی البیان سهرن و حق گفت آن خوش پهلوان هین مکن جلدی براو عیبول کرم مسجد و ما را مکن زین متهم که بگوید دشمن از دشمنی آتش در ما زند فردا دنی که بتاسانید او را ظالمه بر بهانه مسجد او بود سالمه تا بهانه قتل بر مسجد نهد چونکه بدنام است مسجد او جهد تهمت بر ما منه ای سخت جان که نیم ایمن ز مکر دشمنان هین براو جلدی مکن سودا مپز که نتان پیمود کیوان را بگز چون تو بسیاران بلافید از بخت ریش خود برکنده یک یک لخت لخت هین براو کوتاه کن این قیل و قال خیش و را در میفگن در و بال جواب گفتن مهمان ایشان را و مسئله وردن به دفع کردن حارس کشت به با بانگ دف از کشت شطوری را که کوس محمودی بر پشت او زدندی. گفت یاران از آن دیوان نیم که زلا حول ضعیف آید پیم. کودک <متده> کو كو حارس کشته بودی تبلک در دفع مرغان میزدی تا رمیدی مرغ زان تبلک ز کشت کشت از مرغان بد بخوف گشت چون که سلطان شاه محمود کریم برگزر زد آن طرف خیمه عظیم با سپاه همچو استاره اسیر انبه و پیروز و سفدر مالک گیر اشتری بود که بودی هم مال کوس بختی بود پیش همچون خروس بانگ کوس و تاب البروی روز و شب میزدی اندر رجو و در طلب آن, در آن مزرع درآمد آن شطار کودکان تبلک بزد در حفظ بر. عاقلی گفتش مزن تبلک که او پخته تبل است با آن شاست خو، پیش او چه بود تبورا که تو تفل که کشد او تبل سلطان بیست کفل. آشقم من کشته قربان الله جان من نوبدگه تبل بلا. خود تبوراک است این تهدیدها، پیش آنچه چه دیده است این دیدها. ای حریفان، من از آنها نیستم، که از خیالات در این ره بیستم. من چو اسماییلیانم به هزار بل چو اسماعیل آزادم ز سر فارغم از تمتراق و از ریا قلتعالو گفت جانم را بیا گفت پیغمبر که جاده فی بل اتیا من تیقن بل خلف هر که بیند مرعتا را صد عوض زود در عطا را زین غرض جمله در بازار از آن گشتند بند تا چو سود افتاد مال خود دهند زر در انبانها نشسته منتظر تا که سود آید به بزل آید مسر چون ببیند کالۀ در رب بیش سرد گردد عشقش از کالای خیش گرم زان مانده است با آن کو ندید های خیش را ربح و مزید همچنین علم و هنرها و حرف چون ندید افزون از آنها در شرف تابه از جان نیست جان باشد عزیز چون به آمد نام جان شد چیز لیز لعبت مرده بود جان طفل را تا نگشت نگشتو در بزرگی تفل زا این تصور و این تخیل لعبت است تا تو تفلی پس بداند حاجت است چون ز تفلی رست جان شد در وسال فارغ از حس است و تصویر و خیال نیست محرم تا بگویم بین فاق تن زدم والله اعلم بل وفاق مال و تن برفند ریزان فنا حق خریدارش که الله ترا برفها زان از سمن اولی استد که توی در شک یقینی نیستد و این عجب زن است در تو ای مهین که نمی پرد به بستان یقین هر گمان تشنه یقین است ای پسر می زندت اندر تزاید بال و پر چون رسد در علم پس پر پا شود مر یقین را علم او بو شود زن که هستند در طریق مفتنن علم کمتر از یقین و فوق زن علم جویای یقین باشد بدان وان یقین جویای دید است و عیان اندر الهاکم بجو این را کنون از پس کلا پس لو تعلمون می کشد دانش ببینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهیم دید زاید از یقین به امتحال آنچنان که زن می زاید خیال اندرالحاکم بیان این ببین بی که شود علم الیقین عین الیقین از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر گردد سرم چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پانه هم گستاخ چون خانه روم پا نلرزانم نکو را نروم آنچه گل را گفت حق خندانش کرد با دل من گفت و صد چندانش کرد آنچه زد بر سر و قدش راست کرد و چه از وی نرگس و نسرین بخرد آنچه چه نی را کرد شیرین جان و دل وان چه خاک یافت از او نقش چگل آن چه را چنان طرار ساخت چهره را گلگونه و گلنار ساخت مرزبان را داد صد افسونگری وان که کان را داد زر جعفری چون در زرات خانه باز شد، غمزه های چشم تیرانداز شد. بر دلم زد تیر و سوداییم کرد، عاشق شکر و شکر کرد. عاشق آنم که هر آن آن اوست، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. من نلافم ور بلافم همچه آب نیست در آتش گشویم ازدراب چون بدزدم، چون حفیظ مخزن اوست چون نباشم سخت رو پشت من اوست هر که از خورشید باشد پشت گرم سخت رو باشد نبی بی مورا نه شرم همچو روی آفتاب بی گشت رویش خاسم سوز و پردهدر هر پیمبر سخت رو بود در جهان یک سواره کفت بر جیش شهان رو نگردانید از ترس و غمه یک تنه تنها بزد بر عالمی سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ. او نترسد از جهان پرکلوخ. کانکلوخ از خشت زن یک لخت شد. سنگ از سنع خدایی سخت شد. گوزفندان گر برونند از حساب زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب کلکم رائن نبی چون رائی است خلق مانند رمه او سائی است از رمه چوبان نترسد در نبرد لیکشان حافظ بود از گرم و سر گرزند بانگی ز و بر رمه دانز مهرستان که دارد بر همه هر زمان گوید به گوشم بخت نو که تو را غمگین کنم غمگین مشو من تو را غمگین و گریان زان کنم تا که تس چشم بدان پنهان کنم تلخ گردانم زغم ها خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو نه تو سیادی و جویای منی بنده و افگنده رای منی هیل اندیشی که در من در در فراق و جستن من به کسی چارم جویت پی من درد تو می شنودم دوش آه سرد تو من توانم هم که بی این انتظار رهده هم بین مایمت راه گذار تا از این گرداب دوران وارهی بر سر گنج وسالم پا پانهی لیک شیرینی و لذات مقر، هست بر اندازه رنج سفر، آنگه از شهر و زخیشان برخوری، که از غریبی رنج و مهنت بری، تمثیل گرختن مؤمن و بی صبری او در بلا. بنگر اندر نخود در دیگ چون می جهد بالا چو شد ذاتش زبون. هر زمان نخود براید وقت جوش بر سر دیگ و صد خروش که چرا آتش به من در میزنی چون خریدی چون نگونم میکنی میزند کفلیز کدبانو بانو که نی خوش بجوش و بر مجه کنی زان نجوشانم که مکروه منی بلکه تا گیری تو زوق و چاشنی تا غذا گردی بیامیزی بجان بحر خاری نیستد این امتحان آب می خوردی با بستان سبز و تر بهر این آتش بودست آن آب خور. رحمتش سابق است از قهر زان تاز رحمت گردد اهل امتحان. رحمتش بر قهر از آن سابق شده است تا که سرمایه وجود آید به است. زان که لذت نروید لحم و پوست چون نروید چه گدازد عشق دوست زان تقاضا گر بیاید قهرها تا کنی آن سرمایه را باز لطف آید برای عذر او که بکردی غسل و برجستی ز جو گوید ای نخود چریدی در بهار رنج مهمان تو شد نیکوش دار تا که مهمان باز گردد شکرساز پیش شه گوید ز ایسار تو باز تا بجای نعمتت منعم رسد جمله نعمتها برد بر تو حسد من خلیلم تو پسر پیش به چوک سر به نه ارانی از به سر به پیش قهر نه دل بر قرار تا ببرم حلقت اسماعیل وار سر ببرم لیک این سر آن سر است که گشتن و مردن بریست لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان بایدت تسلیم جست، ای خود می جوش اندر ابتلا تا نه هستی و نخود ماند ترا اندران بستان اگر خندیده ای تو گل بستان جانو و ای گر جدا از باغ آب و گل شدی لقمه گشتی اندر احیا آمدی شو غذاب و قوت و اندیشه ها شیر بودی شیر شو در بیشه ها از صفاتش رستی و لحن خوست در صفاتش باز رو چالاک و چوست زبر و خورشید و زگردون آمدی پس شدی اوصاف و گردون بر شدی آمدی در صورت باران و تاب میروی اندر صفات مستتاب جزو شید و ابر و انجمها بودی نفس و فعل و قول و فکرت ها شدی هستی حیوان شد از مرگ نبات راست آمد یا سقات چون چونین برده است ما را بعد مات راست آمد ان فی قتل حیات فعل و قول و صدق شد قوت ملک تا بدین معراج شد سوی فلک آنچنان کانتومه شد قوت بشر از جمادی بر شد و شد جانبر این سخن را ترجمه پهنابره گفته آید در مقام دیگره کاروان دایم زگردون می رسد تا تجارت می کند و می رود پس برو شیرین و خوش با اختیار نه به و کراحت دزدوار زن حدیث تلخ می گویم ترا تازه تلخی ها فروشویم ترا زاب سرد انگور افسرده رهد سردی و افسردگی بیرون نهد توز تلخی چونکه که دل پرخون شوی قص همه بیرون روی تمثیل صابر شدن مؤمن چون بر شر و خیر بلا واقف شد سگ شکاری نیست او را توق نیست خام و ناجوشیده جز به زوق نیست گفت نخود چون چونین از تیستی خوش بجوشم جوشم ده راستی تو در این جوشش جمع امار منی کفچلی زمزن که بس خوش میزنی همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ تا نبینم خواب هندوستان و باغ تا که خود را درد هم در جوش من تا ره یابم در آن آغوش من زان که انسان در غنا تاغی شود همچو پیل خواب بین یاغی شود پیل چون در خواب بیند هند را پیل بان را نشنود آرد دقا آذر گفتن کدبانو با نخود. آن گوید ورا که پیش از این من چوتو بودم ز اجزای زمین چون بنوشیدم جهاد آذره پس پذیرا گشتم و اندر خاره. مدت جوشیدم اندر زمان مدت دیگر درون دیگ تن زند و جوشش قوت حسها شدم. روح گشتم پس تو استا شدم. در جمادی گفتم زان میدوی تا شوی علم و صفات معنوی. چون شدی تو روح پس بار دگر جوش دیگر کن حیوانی گذر از خدا می خواه تازین نکتهها ها در نلغزی و رسی در منتها زان که از قرآن بس گمره شدند زان رسن قوم درون چه شدند مر رسن را نیست جرم ای آنود چون تو را سودای سربالا نبود باقی قصه مهمان آن مسجد مهمانکش و ثبات و صدق او آن غریب شهر سربالا طلب گفت می خوسپم در این مسجد به شب مسجدا گر کربلای من شوی کعبه حاجت روای من شوی این مرا بگذار ای بگزیده تا تا بازی کنم منصور بار. گر شدیتن در نصیحت جبرائیل می نخواهد غوس در آتش خلیل او را که من افروخته بهترم چون اود و انبر سوخته جبراییلا گرچه یاری می کنی چون برادر پاسداری می کنی ای برادر من برازر چابکم، من نه آن جانم که گردم بشکم. جان حیوانی فضایت از الف، آتشی بود و چو هیزم شد تلف گر نگشتی هیزمو مسمر بودی، تا ابد معمور و هم آمر بودی باد سوزان است این آتش بدان پرتو آتش بود نه عین آن عین آتش در اسیر آمد یقین پرتو و سایه وی است اندر زمین لاجرم پرتو نپاید زستراب سوی معدن باز میگردد شتاب قامت تو برقرار آمد بساز سایت کوته دمی یکدم دراز زان که در پرتو نیابد کس سباد عکسها واگشت سوی امهات هین دهان بر بند فتنه لب گشاد خوشکار الله اعلم بررشا نامهای های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.